قصد دوم همسایه ها بخش اول نبرد درست در قلب ساختمان نبردی تمام عیار جریان داشت ترلکوفسکی از پشت پرده های اتاقش مخفیانه منظره حیات را تماشا می کرد و با شادی بسیار می خندید. از همان اولین سر و که شنیده بود با عجله تمام های آپارتمان را خاموش کرده بود تا وقتی قائل به پایان می رسد کسی نتواند او را به چیزی متهم کند دعوا از طبقه چهارم ساختمان مجاور شروع شده بود که در آن مراسم جشنی برپا بود اتاقها را آنقدر نور داده بودند که انگار بینشان مسابقه است. پنجره ها را به خاطر بسته بودند. اما با این حال صدای خنده و آواز به وضوح شنیده می شد. از همان اول پیشبینی کرده بود که این جشن و سرور پایان خوشی نداشته باشد. و البته در ذهن خودش با شور و حرارت فراوان طرفدار آشوبگران بود. آنها هم هیچ فرقی با بقیه ندارند. خودم بارها شاهد بودم که از طبقه پنجم به خاطر سر و صدای زیاد شکایت کردند اما این مهم نیست مهم اینه که این دفعه گرکا به جون هم افتادند اولین واکنش صدای اعتراض آمیز و البته بود که از آنها میخواست برای رعایت حال یک زن بیمار صدایشان را پایین بیاورند اما هیچ پاسخی داده نشد دومی کوشش بسیار سریح و مستقیم تر از قبل فریادی به این مضمون بود. چرا شماها اون پایین خفه نمیشید؟ ما باید فردا سر کار باشیم؟ باز هم جوابی در کار نبود. جز خنده های بلندتر و آوازهای بیشتر. تررکوفسکی از فکر کردن به عواقب احتمالی این جشن و سرور به وجد آمده بود. سکوتی که آبستن تهدید و ارعاب بود. چهار گوشه ساختمان را پر کرده بود. یکی بعد از دیگری، تمام چراغها خاموش شدند تا نشان دهند که ساکنانشان قسط استراحت دارند با اطمینان به اینکه حق به جانب آنهاست دو صدای مردانه از دو طرف به صراحت خواستار برقراری سکوت شدند گفتگوی تند و تیز زیر بعد از آن شکر گرفت حالا دیگه آدم حتی نمیتونه برای خودش مهمونی بگیره کسی به مهمونی گرفتن شما تا یک ساعت معقول اعتراضی نداره اما حالا دیگه وقتشه که تمومش کنید. دیگران باید فردا سر کار برن. خب ما هم باید سر کار بریم. اما اینم حق ماسکه گایی برا خودمون کمی تفریح کنیم. به زبون خوش داریم بهتون میگیم که تمومش کنید و دست از مزایمت بردارید. نمیفهمم به چه زبونی باید باتون با حرف بزنم. اگه فکر کردید میتونید با این حرفا ما بترس رو بترسونید، کور خوندید. من خوشم نمیاد کسی به دستور بده ما هر کاری عشقمون بکشه میکنیم که اینطور حالا که اینطور, اینطور یه دیگه نمیاد با تکلیفمون رو روشن کنیم ها ها ها ها خفشید کار که به اینجا کشید صداهایی که از دو سوی حیات شنیده میشدند شروع کردن به نثار دشنام بر سر یکدیگر و آنقدر ادامه دادند که کارشان به فهاشی های ای کشید که ترکووسکی حتی از شریدنشان شرمنده شد. مهمان های طبقه چهاررمم برای اثبات پشتیبانی خود از میزبانشان همه با هم یک صدا شروع به خواندن آواز کردند. این حرکت آنها واکنش فوری آپارتمان را در پی داشت کتاب ساکت مانده بودند و بارانی از نفرین و ناسزا بر سر شرکت کنندگان در جشن باریدن گرفت. بعد دو صدای مردانه‌ای که دعوا را آغاز کرده بودند در ادامه مشاجره‌ای که بینشان در گرفته بود تصمیم گرفتن به حیات بروند و یک بار برای همیشه قضیه را بین خودشان فیصله دهند. از همین حالا میشد صدای فریادشان را از حیات شنید. تو اون طرف رو منم از این طرف میرم. اگه کسی و دیدی منو صدا کن. بس چرا پایین نمیای عوضی؟ من یه چیزی اونجا دیدم. سب کتو دستا به برسه؟ تررکفسکی دیگر نمی‌خندید. کم کم داشت ترس برش می داشت. تازه داشت می‌فهمید که کینه و نفرت دو آنها به هیچ وجه تظاهر نبوده. آنها نقش بازی نمیکردند. به نظر میرسید رسید به طور قریزی شرطی شده زمان جنگ به سراغشان برگشته. و ناگهان چیزهایی را که در ارتش آموخته بودند به یاد می‌آوردند. آنها دیگر همان مستعجرهای آرامش طلب قبلی نبودند، بلکه قاتلینی بودند در جستجوی قربانی. تررکوفسکی همانطور که صورتش را محکم به شیشه پنجره پنجر چسبانده بود، ادامه کشمکش را دنبال کرد. بعد از یک دور کامل که در حیات زدند، دو صدای مردانه در وسط حیات به هم رسیدند. تو چیزی ندیدی؟ نه. توی راه را به یک نفر برخوردم اما گفت از اونها نیست. منم گذاشتم بره. عروم زاده ها بیام بیان پایین. اما بالاخره که مجبورم برن خونه. اون وقت... ناگه هم پنجره های طبقه چهار رام با خشونت و صدای بلند باز شدند. خیلی خوب خودتون خواستید. همونجا جا که هستید بمونید تا معلوم بشه اینجا کی رئیسه. با وجود فاصله زیاد، ترلکوفسکی میتوانه صدای پاهایی را که به سنگینی از پله ها پایین میرفتند، بشنود. در حیات، دو صدای مردان سرمست پیروزی بودند. خیلی طول دادن، اما بالاخره اومدند. نشونشون میدیم، حرومزاده ها، بهشون حالی میکنیم به هم زدن نظمه اینجا، اون هم نیمه شب یعنی چی؟ برخورد نهایی آنها احتمالا در زیر سقف شیشه ای، جایی نزدیک سطرهای زباله صورت گرفت چون چندتا از سطرها با سر و صدای بسیار واشگون شدند و بین جریان ممتد ها و فریادهای خشمگینانه وقفه انداختند بعد یک نفر شروع کرد به دویدن تا با پناه گرفتن در زیر راه پله خودش را به منطقه امن برساند یکی دیگر از زد و اصلی جدا شد و خودش را با خشونتی وحشیانه روی مرد فراری انداخت هر دو پیکر همانطور که با چابکی ستودنی با مشت و لگد به جان هم افتاده بودند به زمین دلتیدند اما حتی در این حالت هم یکدیگر را رها نکردند یکی از آن دو بالاخره موقعیت خودش را روی آن یکی تثبیت کرد سر حریفش را از گوشهایش گرفت و پشت سر هم به زمین سیمانی کوبید ناگهان صدای آژیر پلیس فریادهای نافذ زنانی را که حالا پشت پنجرهها جمع شده بودند تحت او قرار داد و خیلی زود پلیس های یونیفرم پوش حیات را اشغال کردند ظرف چند ثانیه حتی یک نفر هم در حیات باقی نمانده بود بعد صدای آژیر پلیس درون شب خاموش شد و آرامش و سکوت دوباره به ساختمان برگشت آن شب ترلکوفسکی خواب دید که از تخت خوابش پایین آمده تخت خواب را که به دیوار چسبیده بود کنار کشید و در فضای پنهان پشت آن یک در پیدا کرد شگفت زده از کشف غیر مترقبش در را باز کرد و خودش را در برابر یک دهلیز طولانی یافت. یک معبر زیرزمینی که با شیب تندی به درون زمین می رفت و هرچه ترکفسکی بیشتر داخل می رفت عریزتر می شد. تا اینکه در نهایت به اتاقی بسیار بزرگ اما خالی و بدون در و پنجره رسید. به کلی لخت بودند راهی را که در معبر زیر زمینی آمده بود برگشت و وقتی دوباره به دری که پشت تخت خواب بود رسید دید که یک قفل نو و براغ در طرف روبه معبر در کار گذاشته شده است چفت در را پس و پیش کرد خیلی نرم و بی صدا کار می کرد. فکر اینکه چه موجودی این قفل را اینجا کار گذاشته از کجا آمده و حالا کجاست و اصلا چرا امشب چفت در را باز گذاشته باعث شده احساس وحشت ناگهانی و مشمعس کنندی تمام وجودش را تسخیر کند یک نفر داشت در می‌زد تررکوفسکی وحشت زده از خواب پرید کیوچاست صدای زنانه جواب داد من هستم تررکوفسکی روب دوشام بر کهنه ای را به تن کرد و رفت تا در را باز کند پشت در زن پا به سن گذاشته ایستاده بود که دست دختری حدودا 20 ساله را محکم در دست گرفته بود تررکوفسکی قبلا هیچ کدام را ندیده بود از حالت چشم های دختر میشد حد زد که باید لال باشد تررکوفسکی پرسید چه کمکی از دست من ساخته است زن حدوداً 60 ساله بود. شاید هم کمی بیشتر. با چشمهای سیاهش مستقیماً به صورت ترکوفسکی خیره شده بود. کاغذی را که در دست آزادش گرفته بود، بالا آورد و رو به ترکوفسکی گرفت. شما از من شکایت کردید، موسیو؟ شکایت؟ بله. به خاطر مزاحمت‌های شبانه ترلکوفسکی مات و مبهوت با عصبانیت گفت من از کسی شکایت نکردم زن بی مقدمه به گریه افتاد به نظر می رسید که سنگینی اشرا روی دختر انداخته است که با دقت تررکفسکی را زیر نظر گرفته بود زن گفت اما یک نفر از من شکایت کرده این کاغذ امروز صبح به دست من رسیده باور کنید من بی تخصیرم. کسی که تمام شب سر و صدا میکنه من نیستم. اون پیر زنه. ترکوفسکی که بیش از پیش گیج شده بود پرسید. منظورتون از اون پیر زن کیه؟ همون پیر زن. اون یک افرید هست موسیو. هر کاری از دستش بربیاد می کنه تا منو از اینجا بیرون کنه. فقط به خاطر اینکه من یک دختر معلول دارم. دامن بلندی را که پاهای دختر را پوشانده بود بالا زد و به کفش ارتوپدی که سنگینی که به پای چپ دختر بود اشاره کرد. اون از من خوشش نمیاد چون من یک دختر معلول دارم. حالا هم یک نامه به دستم رسیده که توش نوشته من شبها برای همسایهها مزاحمت ایجاد میکنم. پس شما از من شکایت نکردید موسیو؟ ترکوفسکی گفت البته که نه قبلا هم گفتم من از کسی شکایت نکردم بس باید کار خودش باشه من از طبقه پایین هم پرسیدم اما کار اونها هم نبوده اونها گفتن ممکنه کار شما بوده باشه حالا دیگه هیچ شکی ندارم که همه چیزی زیر سر اون پیر زنه عشق تمام صورتش را خیز کرده بود و صدایش لرزان و بریده بریده بود من آدم بی سر و صدایی هستم موسیو و شبها خیلی زود میخوابم. من مثل اون نیستم. اگه بودم باید خیلی پیش از اینها از شکایت می کردم. اون یک پیرزن موسیو و مثل همه یک شبها تا دیر وقت بیدار میمونه و توی آپارتمانش قدم میزنه. اساس خونه رو جابجا جا میکنه و نمیذاره منو دخترم بخوابیم من خیلی سختی کشیدم تا همین آلو نکی رو که توش زندگی میکنیم پیدا کنم موسیو تمام جواهراتم و فروختم و از خیلی چیزها گذشتم حالا اگه اون پیرزن منو از اینجا بیرون کنه دیگه جایی برای زندگی ندارم میدونید با من چیکار کرد موسیو ترلکوفسکی خواست چیزی بگوید، اما زن ظاهرا منتظر جواب نبود. چون تقریبا بدون وقف ادامه داستانش را تعریف کرد. یک جارو گذاشت پشت در خونه من تا جلوی بیرون اومدن منو بگیره. جارو رو پشت دستگیره در گذاشته بود. میبینید که به هیچ وجه نمیتونست اتفاقی باشه. وقتی من اون روز صبح می‌خواستم برم بیرون نتونستم درو در باز کنم اونقدر درو کشیدم و کشیدم که یکی از عضلات شونم پیچ خورد طوری که جاش تا چند روز کبود بود اون وقت می‌دونید به من چی گفت گفت احتمالا جارو رو تصادفی اونجا گذاشته و گوشش کرده حالا هم از من شکایت کرده من چاره‌ای ندارم جز اینکه به پلیس مراجعه کنم اگه اون منو بیرون کنه؟ تررکوفسکی که عمیقا نسبت به زن بیچاره احساس همدردی می کرد گفت کسی نمی تونه شما رو بیرون کنه به این سادگی ها هم نیست واقعا اینطور فکر می کنید. من آدم بی سر و صدایی هستم موسی صادقانه میگم حتی اگه مستاجر پر سر و صدایی هم بودید کسی نمی تونست کاری بکنه اونها حق ندارن کسی رو که جای دیگه برای زندگی نداره بیرون کنند. کاری از دست اون زن ساخته نیست. به نظر میرسید که زن اندکی قوت قلب یافته. بین حقق گریهش از ترلکوفسکی تشکر کرد و همانطور که هنوز به دخترش تکیه داده بود از پله ها پایین رفت. او کجا زندگی می‌کرد؟ ترلکوفسکی از روی نرده ها تا ببیند کجا می اما پیرزن وقتی به طبقه پایین رسید توقف نکرد. قبل از اینکه ترلکوفسکی از کارش سر در بیاورد، پیرزن از محدوده دید او خارج شده بود. ترلکوفسکی به آپارتمان خودش برگشت. در تمام مدتی که ریشش را اصلاح میکرد و لباس میپوشید تا به اداره برود، موضوع شکایت را در ذهنش توباک زنگین کرد. وقتی با بیطرفی به آن فکر کرد، کل ماجرا به نظرش مشکوک و بودار رسید. اول از همه این که حتی نمیدانست این زن کجا زندگی می کند بعد هم خیلی عجیب بود که ساکنان طبقه پایین، صاحبخانه و همسرش او را به عنوان شاکی احتمالی معرفی کرده بودند. آیا می‌خواستند به این وسیله به او حالی کنند چه اتفاقی در انتظارش خواهد بود اگر به مزاحمت برای ها ادامه دهد؟ قصد تهمت زدن به کسی را نداشت. اما آیا ممکن نبود به این زن پول داده باشند تا به در خانه او بیاید و چنین نقشی را بازی کند؟ اصلا این پیر زنی که او صحبتش را میکرد کی بود؟ تررکوفسکی تا به حال در ساختمان به زنی که حتی اندکی با توصیفات او جور در بیاید بر نخورده بود. یک جای این داستان بدجوری میلنگید. بی سر و صدا از پله ها پایین رفت. نمیخواست روزش رو و سر و زدن با موسی و آغاز کند. مثل همیشه از روی عادت در مقابل ردیف صندوق پستی در حیات خم شد تا ببیند چیزی به نام او رسیده یا نه. دو نامه در صندوق پستیش بود. یکی به نام مادمازر شول فرستاده شده بود و یکی به نام خودش. اولین بار نبود نام ای را دریافت می کرد که به نام مستجر قبلی فرستاده شده بود. هوایل در باز کردن آنها تردید داشت. اما بعد کنجکاوی آرام آرام بر بیالاقگی اولیش فایق آمده بود. خودش را قانه کرده بود که وظیفه دارد بداند آیا مطلب مهمی در میان بوده یا نه. و از آن به بعد همه ی نامه ها را باز کرده بود. نامه خودش چیز قابل توجهی نبود. یک آگهی تبلیغاتی. نامه را مچاله کرد و در حال عبور داخل سطل زباله انداخت. برای خوردن قهوه ی به کافی آن طرف خیابان رفت. پیشخدمت با روی باز به او خوش آمد گفت. قهوه؟ امروز حالتون خوب نیست؟ با شکلات چطورید؟ تررکوفسکی گفت: بله شکلات و دو تا نان برشته خوشک. پیش از آن آنکه پیشخدمت فرصت آماده کردن سفارش او را پیدا کند، تررکوفسکی او را صدا زد. و یک پاکت گالوز لطفا پیش خدمت دستش را به نشانه ناامیدی بلند کرد متاسفانه تموم کردیم اگه بخواهید میتونم از خیابون پایینی براتون تهیه کنم ترلکوفسکی شانه هایش را بالا انداخت. چی دارید؟ جیتان مادمازرشول همیشه جیتان میکشید یک پاکت براتون بیارم باشه ژیتان خوبه اما بدون فیلتر باشه البته مادمزل شول هم بدون فیلترها را ترجیح میداد. ترلکوفسکی ترلکوزکی پاکت نامه را که به نشانی سیما شول فرستاده شده بود باز کرد و خواند. مادمازل امیدوارم گستاخی مرا در نوشتن این نامه ببخشید یک دوست مشترک پیر آرام نشانی شما را به من داد و گفت شما احتمالا می توانید اطلاعاتی را که برای من جنبه حیاتی دارن در اختیارم بگذارید من ساکن لیون هستم و در یک کتابفروشی به عنوان فروشنده کار می کنم. اما به دلایلی که فعلا از طرحشان معذورم، چاره ای جز این برایم باقی نمانده که اینجا را ترک کنم و در پاریس ساکن شوم. شغلی در یک کتابفروشی واقع در شماره هشتاد خیابان ویکتوری به من پیشنهاد شده است. من باید جوابم را حداکثر ظرف یک هفته به اطلاع مدیر کتابفروشی برسانم. اما در حال حاضر در تصمیم گیری بسیار مردد و دو هستم. برای اینکه پیشنهاد مشابه دیگری از یک کتاب فروشی دیگر، باقی در شماره دوازده خیابان واگیرار دریافت کردم. من پاریس را خوب نمی و شناختم از این دو کتاب فروشی حتی از آن هم کمتر است. از آنجایی که درصدی از فروش کتاب ها به عنوان حق کمیسیون به من تعلق می گیرد، طبیعتا ترجیح می دهم چیزهای بیشتری درباره امکانات و شرایط هر کدام از آنها بدانم. پیر به من اطمینان داده که شما مطمئناً این لطف را خواهید کرد تا در این باره تحقیق کنید و برآورد و ارزیابی خودتان را برای انتخابی که باید بکنم برایم بفرستید. من کاملا از مشکلاتی که درخواستم برای شما ایجاد می‌کند آگاهم. اما بسیار ممنون و مدیون شما خواهم بود اگر این لطف را به من بکنید و در اسرع وقت مرا از نظر خودتان مطلع کنید. به پیوست یک پاکت نامه تمردار هم همراه با آدرس برای شما میفرستم. باز هم پیشا پیش از شما به خاطر کمکتان تشکر می کنم. زیر نامه نام کامل با آدرس ذکر و امضا شده بود. فرستند یک زن یا به احتمال قویتر یک دختر جوان بود. پاکت تمرداری هم که به آن اشاره شده بود، زمیمه ی نامه بود. تررکوفسکی با خودش گفت: خودم بهش جواب میدم. درد سر زیادی نداره